الحمد <سؤال> لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله اغالي الطيبين حاضرين يا در استطراد در بحثی خارج ببین خارج به حل دیو رحم یه مو البته بازمون در حد همین که روایاتش رو بخونیم تا اینجای بحث رسیدیم که در مجموعی روایات ما و سنت به همین المهمنی دو بحث نسبت داده شده یکی این که اگر ریش کسی تراشیده بشه حالا مالی قسمات احرسونتش نخوندن در نکنیم و در نیاد یه کامل در بیاد ا سنت در ن چیزی نیست با که در ارت معامله زمین که سر دیگه این مال یک قسمت هم یک دسته این البته اونی که از امور معامی نرو شده به صورت یک ماده قانونی است به طلا ما مثل یک بند قانونی یک ماده است. اون به این عنوان که میشه که شده بشه خصوصیت از امور معامین یک ق دوممی هم نقل شده در مس مساد سنت که یک نوع خسومت بود یک نوع قضیه خارجیه بوده واقعیه که واقع افتاده و اون به این صورت بوده که کسی آق یا و مرق اضاقی رو سر کسی مرق این و رو سر کسی و موی و مو رفته. امام فهمدن که دیگه کامل اون دیگه به این لمیمبوت توش نداره تو اون فرز دوبان لمیمبوت نداره مثل لحیه نیست اونجا ساکته. و اینم در روایات ما هم هست در روایات احل سنت هم هست او که مقام جمع من یه جمع میخوام بکنم یعنی توی مقام تاریخ نهاییش یه توضیح بیشتری در این جهت، در این خصوصیات از میکنم یه چی که گفتیم بازی کم بیشتن این تا اینجا این رو تا که دو تا تسته از امیر المومنی و در اون تسته دوم در بحث گذشته مفصل متعبض شدیم که اون قصه در روایات ما لارد شده از امام صادقی از امام مومنی سؤال از امام صادق لیکن در اون قصه در سوالی که شده نسخ روایت مختلف در آن یک نسخه بود فرده هم شعرو یک نسخه بود فرده هم شعر رأسه یه نسخه بود فرده هم شعرو رأسی ولیهیت یه مفصل شعر نیستن و گفتیم ظاهرش هم شعر رسمی و لهیته با درست بشه بعد از زحمات زیادی که مخارمین و رو با هم انجام دادی باید همون ظاهر شعر رسمی و لهیته باشه این دو تا یک روایت سوم هم در مصادر اسماعیلی ها آمده اون روایت سوم رو در اینجا در این کتاب جامع احادیث در باب 4 حباب دیات الاحزاز حفی شاسن و از این جد سی در کتاب جامال احادیس جلد سی و یک و آخر کتابه در وساقه نه دیات نونزه ها مثلا در شاق مرموان بانید و آخر نیست آخرش بیستونه خاتمه ای داره در وساقه در این کتاب فاضل معاصل ما رحمه الله و رحمه الله مرحوم آید برو جردی که بوده این کتاب بودن یه مقدار از اون مطالب خاتنه رو که مرموم شیفه برده آخر کتاب رو در اول جلد اول رو بردن. که با آید برو جرده مادم خدا خودشون مقدمه مرمومه علایه کیف ماکان به هر حال این دیاد آخر کتاب رو دیگه ایشون توارده نسب حساب و سائل رو نداره انصافه هم سال وسائل دوازده فائد در خاتمه وسائل داده خیلی مفیده قیدی فوائد در کتاب دایمال اسلام سفر شاستان نونزدی جلد سویه ایتو در روهینا ان محمد ان عبیه ان آبائهی ان علیه, علیه السلام ان رسول الله قضاف شهر رس یونتقو کلوم فلا بود ففیه دیتو کاملتن و این نبس بعضو دون بعضه فبه حساب داله قال جعفران و محمدن فه این نبس ففیه اشون دینار این روایتی که با این مضمون در کتاب دائم الاسلام آمده من من ارس کردم اینه که دون بسیار قدیمی و محمد محقق از اون تبایه هشیری هست احواق اینا که دنبال تعبود بودن اعتقال این بود که اگر خبری در جای آمده ما قبول بکنیم در هر و شد دیگه و خب در مقابل خیلی بحث میکردن که باید خبر قابل قبول باشه و این پیش ما هم نیست پیش عهد سنت هم, مثلا هم هست مثلا همین حرف کردم معروف اسمان یمن به نام مسروح ایشون آمده مدینه و خیلی هم آیشه به ایشون اية عائشه بوده داره شن نظر داره مسعود بن اشعره تعریف منه خیلی معروفه به بخاری و احادیثش این از این قصه افسائی مبارکی عرق رجب عائشه رو کنه مادر عائشه عمر که مسعود می عمر روما بود که آیه در مورد عائشه دختر خب این تو بخاری آمده از اون محققینشون میگن یعنی اصلا مسعود وقتی آمد. مرده بود نبود این یکی تازه بود. یکی از مشکلات خود اهلشون سنت در عربن، یکی این که آیه قبول نمی‌کنن. میگه مردو زمان اومد، نرسید این اشتباه وافد. این حدیث خرابی داره تو بخاری میشه. اهلیه گفتن خیلی خوب شما این مورد رو از این که بخاری نحن کرده بود. از اینکه بخاری ناهل کرد، این فلسفه زده بود. دقت با اینکه شواهد تاریخی نشون میده که مأصوق اصولا عمر و مار درس نگرفته، اون عمر هم که شری بود. با که چون بخواهی نقل کرده ما اعتماد میکنیم این از قدیم بوده یعنی چیز تازه نیست من کلاراً عرض کردم در مجموعه ایلواز ما و اهل سنن از فیغمبر در درباب مو خود رو نداری نه سننی ها در نما. کردن ما تازه تمام اعضا هم نیست اصلا یه بحث از, از اهل سنن موسیقی ها و مالکی ها داشن که اصلا مو دیگه نداره چون دیه باید در منافع باشه موم جزای منافع نیست توی روایت ما هم نیست اون چی که در کتاب احسان در باره دیه مو صحبت شده همین است که من انا عرض کردم. و انیر مهمهی نسبت داده شده و به زیده نصابه به کسی از اصطحابه نسبت داده نشده به دو نفر اصطحابه نسبت داده شده که واقعا به دیه بودن توی موم یا مونی ریش آمونی سر یا مونی هر دو. اصلا در مو از پیغمبر اکرد در هیچ از روایات ما و روایات اهل سنه نیامده که پیغمبر اینجور فرمین فقط در همین کتاب دارمون اسلام هیچ جدیش ما در داریم به از این مال زرافت های بحثه فقط تو کتاب دارمون اسلام داره که قطع دار رسول الله انا هديه ان جابر وانا وابويا هديه ان الرسول قوافي شهر است. به استثناء این روایت دائم هیچ جای دیگه ما نداریم اكثر که جماعته بر اساس نیوچیه از علی المؤمنین شافعیه و مالکیه که اصلا قبول ندارن میان نه ندارن توش ما به تهذیب مثل ابن حث تعزیه قبول میکنه حکم اصلا قبول نمیکنه میگه چون, چون در کتاب در روایت نیمازه سلمت نیمازه ما زیدونتیم درش ایش دیه دیه قرار بودیم و گفتن اصلا مون رو به جماع منافع نیست و لذا در مورد مون اصلا حتی, حتی اون کلامی که از امیر یا زید ابن قبول نکن حالا این خود ما طبیعتون اینطوریه که چون قاضی نعمان ساکتا دا داره. اصلاح حوامان ما بچه که به فرد عادی که نبوده این مرد فقیه ملاس بلا اشخاص مرد ملاقی از این حقیق قوه قضایی زمان علی امام الموئز خلیفه چهارم فاطمی ها اگرم بر امام الموئز معتقده دو سه جام تو داران اسمشو برده و سرکل امام الموئز اما یک کتاب مستقل در احوالات معز دارست تازه شاب شد شاب شاب نشده بود منم دارم یک کتاب ک امام چهاران همه به صافات میهاییمه نامه امام محض یک جلد در شده خیلی کلاماتو مثلا در جوهی در ساعت و هر حال چطور شده این اشتباه رو کرده این از کجا اصلا ایشون عوض به منشه بوده من چون عرض کردم کتاب غذاب سنمی و, سن و پیش ایشان بوده اینو ما میدونیم اما کتاب قضایه و سننی که پیش ایشان بوده سندش رو در کتاب ایضاق اوورده سندش به اول سند به اینه سند که شیخ توسی داره اصولا من هستم کتاب قضایه و سنن و که اون دامونتا آرکت بوده نسخش از طریق امام صادق با ایمان نیست از طریقه دیگریه از طریقه نواهای عبورافق میرسه بیشان ستون راه بیجره از این راه نیست اگر بگیم از کتاب قضا یاد این روایت بیروت خوندیم که صفحه 450 دائمی الاسلام آنه علیه انه قال خليه يكون طرف او توله فبات همون این حکم از تو قضا باشه چون یعنی علیه نبو با اما اینکه یه رو بیان جعل برای محمد این به کتاب قضا نمیخوره چون تو کتاب قضا هم سندی نیست نداره و من کرانه هست که منی ها مردمان دقیقی بودن نکافت و کاملا است این تأمیر جعفرن محمد عنه آبائی به روات سکونی درست بگیر سکونی روات سکونی بوده ان جعفرن عبیه عنه آبائی عنه قال قال الله. این با اون اما ما الان کتاب سکونی از روات سکونی فرم یکی که داریم که خوندیم اونم مرموم صدوح ابرده فقط آقا یعنی چه با ما می یعنی روازه سکونی فقط یکی درون چیش رقیه هست؟ این نیست؟ آه، سند،, سند، سند سکونیه این سند، سند, سند سکونیه سند کتاب خدای رسولان نیست؟ رو بینو انجا این سند به کتاب سکونی بکنه؟ از اون برای ما ارز کردیم موظم یا همه کتاب در جعفریات آمده این عبارت تو جعفریات هم نیست یعنی بی جور نیست ببینید جعفریات همی زرین جا در جعفریات به اصنابی هم جعفر ان ان هم عدیه هم نعلی هم ببینید فشعر از به کلو عدیه تو کاملت ظاهران عبارت سکونی این بوده جعبال یاد با سکونی این هم همه جعبال نهبی هم آبایی هم نهب لیکن تویش خضا رسول الله نهبه باشه ایشه احتمالاً در کتاب سکونی بوده احتمالاً این به ما نهرسیده ارمان اون که از کتاب سکونی ماهرسیده ایشه اونه برد کرا تقیید اصلاً کتاب سکونی در این باره توسط کلیه با که پیچه موجود بوده چه خیل توسی با این که نرم میکرد نرم نشده فقط تو فقیم اونم تو لحی آمده لیکن چون جهسریات هم تکاب است من به احتمال بسیار بسیار قوی بسیار بسیار قوی میدم که این عبارت بین جهفر محمد در کتاب سکونی بوده هم مال عبارت جهسریات هم دارم الاسلام بسی این ها خیلی موجب و مختصره دارمون اسلام که کمی متنش مفصل تره و بعد از تأمل زیاد احتمالات داره احتمالات نموها تعملش نر بکنیم احتمال دیگر در کتاب سکونی اینجور بودن جعفران عبیان آبایان علی انهو قال قضا ایشون انهو قال قال علیان قضا هسته خب نمیشه این قال علیان قضا علیان این که تو قضا به رسول الله داده به نظر من اشتباه داره در اینجا بوده به نظر این که من فکر میکنم با شباده این بوده چون از این محل در هیچ کتبی نه از شیعه و نه از سنی و هیچ محل نیاده هیچ جا نیاده منحسرم در دائم بگیم همچه قلب که درموشه مرتکب بشه علنی و واضح که نموشه این همی خیلی تطورش کنیش نمی‌دونم که آخر ذهنوار این اینطور بوده ان علی اننه قال قلا بخ مشکل چیه؟ مشکل نوث غلط بوده ان علی اننه قال و این قال زائده کلمه قال این کلمه قال زائد بوده بله و لزوم این ان جعفر ان علی انا ابيها ان علی, ان علی, ان علی ان قال شعر اذا ذهب کل و در باید سکونی بود باید این سکونی که بود فیره واید سکونی هنه علی یه قضا فلده من احتمال علی یه قضا این قضا توی نسخه دائم هم بوده ایشون قضا رو به رسول الله داده بلی اشتباه باید قضا بکن خود این که در اون رو باید یک سکونی داره قضا فلحیه کذا درستش همونه و اون رو باید سکونی از طریق مسمع هم به ما رسیده بود هم عبی الله خال قضا امیر المومنی فلحیه اونجا قضا دارش و لذا به نظر من میاد که این قضا رسول الله م... کتاب دعا نامده قطعا باطله یعنی احتمال صحت ما درش نمیدیم این درست نیست این راجب به که این دو دوم کلمه قضا من صادقانه هم توضیح دادم کلمه قضا در روایاتی که ما مجموعاً داریم که در رسول الله نسبت داده شده که روایات سونی و شیعه سه نحوه استعمال داره قضا در رسنادش رسول الله یک قضا برخش خصومت باشه این دو نفر دروایی بوده قضا بینه همه به قضا این قضا استعمال شده دو اون جعلی که رسول الله با عنوان کامل و دائمی فرموندن اونم با داره. مثلا به عنوان قضا زاده مثلا قضا به شفع این قضا به شفع جعل شفع فرموندن یعنی به عبارت اون هم همه اینکه ما استران سنن می‌گیم در مقابل فرائض الهی سنن ثابته و دائمه رسول الله هم به عنوان قضا آمده که اگر آین حال کردن درست لازر را نگاه بکنن در اونجا چند بار کلمه قضا آمده. قضا رسول الله به شبعه و قال لازر و لاذر. اون قضا به من است یعنی اون سنن دائمی رسول الله معنی اون سنن مبخفت رسول الله نمی‌خواد اختلاف باشه مثلا اینکه نبر حکم کردن که بمب بزاره اجازه اینکه با کشیرشه یک سومش به عهده یک سومش بود مثلا قضا رسول الله که مثلا در جنگ خیبر شو مصممون داشتن علاغاشون رو نخوردن می‌کشتن برای خلاص غذا قضا رسول که علاغ نکشیم این علاغ نکشیدن رو اهل سنت قضا دائمی گرفتن قضا دا قال به حرمت گوشه علاغ اهلی شدن نه علاغ واقعی بود خری اما که روایات شما در این موقت بوده قضا رسول الله چه سنت موقت بوده شما بگویید الاغ‌ها رو با کین قانون خیبر کردن معنی می‌ده خب رای نداشته هر کسی نخواهید با اون الاغ‌ها بیارید بار را بیارید تا مدینه الاغ‌ها رو بخوریم وسیله برای آوردن نبرد پس این جزء قضا موقت بوده پس ما یک قضا یعنی حکومت قضاوت یک قضا یعنی سنن جاهمی رسول الله یک غذا سنت موقت رسول الله. اگر این درست باشه که درست میدید اگر این قضا در اینجا دوتا سنن دایم رسول داره یعنی پیغم برای که هم در دیه در مو دیه کامل براندار این قضا دیه و ظاهر آیه مبارکه اون دو تا است. یعنی قضا دایم و مبارکه ما کانال مؤمنه و مؤمنه اضافه الله و رسول و امرن نیکن ده همون خیره این ظاهرن بحث قضاوت نیست یا سنن دائم است یا سنن موافقه چون این یا بعضی معاصلی نیستنی که این مورد قضاوته چون قبل الله و رسوله بیشه خدا کسی قضاوت نمیداره که محکمه بیشه خدا نمیداره معنا نداره. از الله و رسوله در هر دو به اصطلاح عبارت است مسئله جهن کلیست که قرار داده شده این هم راجع به اما اگر انعلی یه قضا اون بیشتر قضاوته قضاوت تضابط هایی که از امیر شده به هر حال به ذهن ما که خیلی مشکله بله. اما حالا چرا ایشان تحمیده قضای رسول الله مثلا سال جا یک این بوده شباید گفتید همه بر قضاوت هم نبیشون بکنید شباید دقت بکنید ما سه تاره با این را ستاره باید، یکی در باب ریشه حالا ما به بس... چیززار ماده دخوان ماده خواهن. اون یکی ماده با. در باب ریشه به سر بهشه ماده ما کسی که ریش رو به سراش و در میاد مثلا به کامل در وی سوس دیست این مادهمان. یکی راج به موی سر اون بیشتر به جنبه واقع خارجی یعنی قصه خارجی، آب جوشی رو سر کسی دیخه شد «هزار فرمانه که سر بکنیم ولی زا که یک معنی اهل سنت داره اجله هم سنه این خب مالا قضیه خارجی است. که سال حدود سلطنه مو در نعمر اون وقت این باید یه کامل بده این مردوم این قصه خارجیست عمل است. خارجی از کردم ما از عمل خارجی بخواییم مردو کامل در این مشکلی این مشکل داره یک سرومی هم اینجا در دعایم آمده اون سوم چیه؟ اون سرومی که از ترمیه بحث نبوده بحث قضاوت نبوده بحث ماده قانون ماده قانون دیگه اگر موی سر تندرشه در نیار این هم یک دیگه نه اینجا آب داخلی که شد. پس مجموعاً سه تا نقل از این رو مؤمنی شد دوتاش ماده قانونی مثل این مواد دوانی کنم رو میبینید یکیش قصه خارجی اون دوتا که ماده قانونی یکیش راجع به ریشه، یکیش راجع بموی سره که اینجاست قرار ببینید پلافی شعر لذا من فکر میکنن داره گفته این قضا که میشه از مومین باشه که این ماده این مناسب است که از رسول الله باشه چون اگر از علیه نویزه اون شد قصه خارجی باشه تو قصه خارجی چرا آم و جوش رو سر آدم بکن. او اون محبوله اما اینجا قصه خارجی نیست به شکل ماده قانونی شهر شعر رسی یونتف و کلو بود این اونی سر رو نیچشن نفسه نیچشیده هر وقت توش نیماده قال فتیه حضییت رو روشن شد. پس بنابراین این. این هم ماده دوم. از این ماده قانونی دوم که نقل سوم بشه از امیر این تو جهتریات هم آمده اما در جهتریات یه تفکیقی به این ریش و سر نشده عبارت جهتریات هم که باز منصور به امیر المومنی ان علیه آن فه شهره ازا زهره کلو عدیت و کاملت هم. حالا یا این رو مطابق با نقلا قبلی دیگه چارمی پس از امیر مؤمنی مجموع ان چهار تا نقل شده سه تاش به شکل ماضی قانونی یکیش به شکل قصه خارجی دقیق پرمودیم اون جایی که ماضی قانونی اون طوریه یکی ریچه یکی شهر رست یکیش شهر, شهر کلوه و اگر ما این قدیم رو هم قبول بکنیم که در اون زمان وقتی نظر شهر کلو یعنی ویش و مون نه مونی بدن و زیر و سینه و پا و اینا مراد شهر کلو هم این دو تاست چون هم لباس بوده چون اصلا نکه اتفندیش این بوده که موی زینت یا خب مونی داخلی زینت سامن میشه این که سر و صورت آدم مون از باشه از یک جمالی محلومه به این ما مجموعا چهار تا نقده آیا واقع مطلب همینطوره؟ دقت کنیم ما وقتی به شواهد برمیگردیم برمیگردید، مطلب اینطوری بوده. داره. که تا اینجا چند تا مورد رسیدیم چهار تا مدر. من عبارت و صنایه کاسانی کرد علمای اهناف بخونم کتاب خوبی است بدایو صنایه چند تا شاب داره. ایشون در بحث دیه درستیده و غضارویه ام سیدنا علی رضی الله ان قال فر اینجا به هم موی سر آوردده. ااضر فلیم بود از دی تو کامل است این شبیه نر دانش شد. فقط دادش خضا از اوبال نداره. پس یک م درآمد ش راس و رس با عنوان یک ماده قانی در این اناب من شده از کردم این ماده سنای هنری اهناف معروفی که سخنشون که بروانه‌ای کار ده علی بن طالبشون و از کوفه بود سخن کوفه اصطلاحاً به عبدالله و مسعود علی نسبت علی طالب مسعد میگن. سر رو در کتب حنفیه پیدا بکنن چون این در گدای مرغینانی نداشت چند تا و حاشیه در نداشت پس یک چون ابو هنیف هم خالده. یکی شعر رست ادا و قال و رویه و کذا رویه انا و انهو قال سلحی ادا خوله قد فلن تنبود از این اینه نقل ما در لهی همه همین نقل شده این هم به شده ماده خالده. پس دو تا ماده قابلی این درده ها بقیره ما تبکی کردیم معلومی شما اون کسی که نهر کردن تمام این درافت ها رو ملاحظه کردن یکی موی سر و یکی موی ریش لکه به شکل ماضی قانونی و رویه اینا همه در قداری و سنایه و رویه ان رجلن اقلا ما ان اقلا دارشن دوشون فسد بهو علا رأس رجلن فسده جلد, جلد رأسیه فقالا سید و نوحلی رضی اللہ عنده دیگه این قصه خارجیه <تصفيق> خروشه چیمی عجیبا ولی که تا بداری سناهی حالا مثلا ماها این سه پشت سر حالا یک بردی حالا سهر جامعه احالی فتو خوده میشه, اگه خوده. اگه خوده. میشه از یک جا میشه از یک جا این معلوم میشه که واقعا فقیه اون فقاحتیش از کجور هست این در سیتار واقعا معلوم ملایت بدار حالا کمتر تا خیلی به شما خیلی فواید خوبی داره مثلا برای ماها چون روات ما کوفی هستن من همیشه اثر سیره ابو حنیفه ها به لحاظ روات ما خیلی نافع سیره مدینه به لحاظ امام چون امام در مدینه بودن خوب دقت بکنید ما صفحه دسته داریم چه مثلا مصر داریم چه شام داریم ابزای قت شام داریم لکه ما هیچ که خیلی تاثیر با ما ندارن برای ما این دو تا خیلی اهمیت داره یکی فقه مدینه به خاطر اینکه امام در مدینه بودن من بعد از روایت که امام سادر بوده با عبارت مدردانه کبرای مالک حل شهرین چون همون فرم مدردانه کبرا داره اون روایت امام و بعض همین مسئله هلال رو که آلکوی هم تم از کردن ما توضیح کافی داریم که این روایت هلال که ایشون فهمدن اصلا این نیست مراد روایت که اطلاق یا کسی که بعد از آلکوی ن اصل اون عباراتی واسه حلال و اداره اهل و بلده هست. این در همین بدای و سمای حرفی نکته دیگری داره دیگر دیگر. اون نیست که بنان و امام راجی رو یعنی به ذهنشون خطور کرده این دو تا شتا این دو تا فکر خیلی به در درد کار می‌خوره یکی فکر ندینه به خاطر حال روغات ما به خاطر حال امام به یک فکر کوفه به خاطر حال رقات ما به خاطر امام بودن محدود اما با, با از <باسته> می مخاطبش دونند گاهی اوقات مطلب رو فهمیدن چه به کم بوده حال نداشتن که یه موجه می وقتی به عبارت مالک بر مطلب کاملا واضح میشه این هست دیگه این دیگه که خب این واقعیت داره می خونید بحثی هم گذشت چرا بحث مکاسه گذشت شراب یکی که فروخت به کسی مدیون بود شراب درست پوشه برای خب اینه داره بابای ما هم گیر کردن آهای خویه همین گیر کردن خب شما میشه میشه برای که زیرون ما ما اینه دیم از مدربنی کبرا مراد اکیتی فروخ که که از ذمه مسیحی و یهودی نه مسلمان تو تمام ما شای چهار سر تمام رازمه هم شده. اما تو مدربن این ماله هر زمه از رجالی خب خیلی فهم میکنه شما بگین اگر مسلمان شرایط فروخ مالک نمیشه اما اگه شرایط فروخ مدیون من بود پول شما به من دادشان زمه فارق میشود ای گیم کلمه تعوض شو کن انرک بده کان الله علی الرجل درایم اباء خمره فوفاقا نذر این رجلی که زفاری خودش اهل ذمه بوده یعنی شما از یک مسیحی پول میخواید جلو شما شراب برو ده گاز جلو شما شرابو قرضش از خود پول داد امام میپنه اشترانه مالک هم بگه این اصل فتح محمد فتح چون مالک بلا زمان ساده کوچیک سال بوده خیلی بزرگ نبود در مزار زمان باقت و مالک یعنی مالک چون نقلی کرده فهمیدید که احل مدینه چی بفتن و اصل کوفه تندتر بود توی این ابو حالی بیگه شراب به تو چی نمیشه بذارید این شراب خواسته بیگه یهودی یا مسیحون به روژه مالک میشه مالکه مال که بف نه اون هم نمیشه نه شما مچن شراب یه ز یهودي ور بفروش فرق میکنه اما اگر یهودی به تو فروخت پول نقد به تو داد یک یه کتاب به یهودي میفروش پو مثلا یهودي شراب فروت به دهت مثلا پترو شما دهت پتر یه دهت پتو ازش میخري میه نمیش دقت کن این نمشه اما اگر درست داد پتوی به شما بدهکار امکار بوده شراف بود درست پتوی بعد به جای بده ایش داد اون میشه این میگم شون اینگه میداد پتوی عجوی حالا مالک میگه چرا میگه چون پیغمبر هرکن از یهود و نصار ها جذیه خب یهود و نصار ها که پیغمبر میگردن بعضیشون پول شراب و خندوینا بود پیغمبر ناجوده نکرد مالک دقتش رو پیش مالک یه اگر انسان پولش ذمهش بود با پول شراب میشوه با ذمه اما عین خارجی نمیشه به این نکته فرز می که زمان رسول الله بود ذمه یهودی به دولت بود روشن شد نوثه میگه این رو اخفاش میکنه ذمه شخص یهودی به شخص باشه اینا ناصر روشنشی بود حالا شما به رواغت ما برگیریم به کلمه آقای خوبی به همه گیر کردن چی کار گیر کردن؟ تو رواغت ما داره؟ این ما عبارت مدردنی کورا رو آردیم عبارت ما زی تصویر میکنه دیم درستان راستان تو یعنی اصلا مشین رواغت حد میشه و این میگرم مباردی هم ندارد یه شرد داره وقت این کاران است وقت دقت عبارت و بزایی آسان های این کارسانی شکر دفت به کار برده این دفت که سه تا قصه از اگه رو بوده یکی ماده قانونی اگه به مون بوده یکی ماده قانونی با عنوان موی یه تر بوده این دوتا یکی قصه خارجی بوده تا آب جوش توسنشی این, این سه تا که این ستار را در کسی هم بدلستان های پشت سر هم برده چه را و این ما یکی هم ما داشتیم در جعفت را یاد ازازه هم و شعرک و لح نداره زایرم اون موی سر دریش با هم شد چند تا؟ چهار تا پس مجموع ما نقلن حدیدن علی سلام چهار تا این مال اون نقل انعالیه حالا اون یک مطلب، اون مطلب دیگه سیر تاریخی شاید سوگش به ما اون سیل تاریخی که چی جور این انعالیه به ما رسیده یک لهیه مویریش یک این مسئله مویریش در همین کتاب بعض از کتاب هنفیه ها هست این یک دو این توسط امام صادق نقل شده یکی در بحثه نقل کرده به کوفه نرسیده و متأسفانه از بحثه از خط گلوم و یکم یک سکونی سنی نقل کرده اما توی زمان امام صادق مشهور کوفه نقل نکرد یعنی زمان امامونی بگیریم فسن سال چه تا سال صداقه امام صادق تو بسط نداری امام صادق رحم ببینید یک این ترتیب. یکی مسمع از بصر و بعض امواله کسانی که متهم به که زنه شو نا یکم سکونی در کوفه خب در اصل سال 350 سال تا کجا مال مسمع و مال سکونی مسمع رو سال 320 مثلا 300 کلین ارزش سکونی هم در حدود مثلا 600 ارزش بده آیا مصادر بحث ما نرفتن نه و حسین داریم داریم حترم من مثلا رادون دغلقه داره یعنی از سال 50 تا 150 تا تا این سال پنجاشو ما این خصوص شعر و لهیه خصوص مولیه ریش از زمان کلی به بعد مشهوره به علاوه تضوا هم دقت بکنید در تاریخ ما فبارزا رفت اون سی سر دره فبارزا همونده 300. پس از سالهای 300، این روایت مویری که آمد هم در کتاب فتوالی نصف زار هم در کافی کتاب همیسی فقط اختلافی داره اختلافش اینه در کتاب فتوالی در زار اگر مدرامت گفته هیچی نیست در روایت رو که اگر مدرامت یک تبانه دیگه این فرماشه بود یه نقطه خارجی لطیقی هم خدمتون بگن ما مدل پنجا تا سد نداریم مابین سد هم شاهدی نداریم ادهی اصلا در به قول خودشون های تحریقی های جویشه میگن پس این تطویه از که رضا شما الان حد علم ما این خود دخلیم که ما فقط مشین با در حد دل واقع نید. اما حد دل علم ما اینه انصافن اولین کسی که این این فقور رضاست که حفظ کردیم این کتاب به علامای آقا معلوم حسین روح پیشناهد شد به عنوان جمع دین مفتر یه رقومی رساله عملی مشترک نرشته بشه ما بین قوم و بردار مشترک باشه و احتمالا زمینه قبول بعدی ها چه قوم چه بغداد همین کتاب بوده به هر حال خیلی ما یه داریم میگیم اما این حد علم ما واقعش چیه نیدیم. اما حد علم ما فعلا اینه از بعد از طور هم تو اونجا افتاد هم توی بردار بغداد هم در کلاب کافی هم در کلاب تردیب آموده خطم هم هست ان بحث مشهورتر فرخات ها روزگار ما که از قبل ساز می گفتن اگر درآمد سلطه بیه فدرالون میگه اگر درآمد یکی نیست لاشه اگر موی یه درآمد یعنی مشهورتر ارباب ما توی درآمدش داشتن به همون روایتی که اشغالدار شده سکونی درات مشن این نتیجه نهایی این تاریخ موی اون قصه خارجی که آب داغی سر کسی بیخته شد این تو مصادر آمده که خون نه هست. در مصادر آمنه از امیر نقل شده اون دفت کردیم و در مصادر آمده به اصطلاح قصه دستان خارجیه رو سر شیختند و و و یک سال مهلت بشد یک خصوصیت خارجی. و این قصده هم تو کتاب نهل بود هم بدایی اصطناهی کاسانی توی موتون ما خوب دقیقی میکنید توی به اصطلاح بله توی موتون ما این قصد بر آمده در ففر رضا یعنی از زمان همین رو تا زمان ففر رضا دیگه نیامده. این مدرد بخواب بله نه آمد. در مطرح ما اصلا کلا نه در مطرح ما از زمان امام صادق، به سند صحیح از امام صادم اون مسئله مطرح شده لیکن نحوه مطرحش اون خصوصیات زمان انیر مومن نیست به این عنوان کسی آب جوش رو سر کسی ریف نه به عنوان قضاوت و دادگستری و بردن بی جمعی و مومن نقوم کرد از جلب سنم پیش نداره سوال کسی آب شو رو سر کسی ریخ مویور هست امام فرمودن که دیه داره تفرک کردیم این رو ما داریم این نمش از امام صادق صدیه راوی مشهوری مثل سلیمان نخالد نقل کرده و بعد از سلیمان نخالد بعد, بعد از زمان صدق پنجام حالا چون مثل خود حشان صدق کتاب داره احتمالا تو کتاب جعفران بشیر آمده بعد از او در کتاب سفار آمده سعده ابن عبدالله ای رو نقل کرده خوب دهر کردیم؟ سعده ابن عبدالله ای نقل کرده ام زمانی که به فکر سفار آمده در کتاب تخلیف شلمقاری هم آمده در کتاب کافی هم آمده در سبیه هم آمده در تحضیب پس این مثل قصه مویریش نیست این خیلی مثال از زمان ما مصادف هم عرضه شده هم فرمیسته هم مسادر وقت ما آوردن هم تو به برزه آمده لیکن تعبیرش شبیه اون قصه است که از امیر مومنه تعبیر که آب جوش بریزن. تعبیر ماده قانونی نیست این اول یه چیزی هست ما میتونیم بگم خصوصا خراب میشه خصوصا نقاط دیگه ای داره این هم پس این یکی از وجوه شوشنه فقط این مشکلی میکی چی مشکل این میکی نیست در کتب ما در کافی داره زهر شعر راسه که سند ظریف در یک کتاب سعد بن عبدالله داره زهر شعرو ها لا کتاب بله سعد بن عبدالله ذعب شعرو در کتاب از خفا داره زهب شعر رعصی و الهیت این ورد ماشید سر این هم نقل دوم ما و تاریخ نقل دوم مطلب سوم که امیر و باشند تو انموده فی شعر رعص این کار به ما آبه ها رو این اصلا ندارن چون کاری به ما آبه ها ندارن قضا فی شعر رعص یون تف کلو سلاین با سیه که به شکل ماده نیست توش آب جوش رو نیست. حالا قیل از, از, از این قضیه را اصلا آب جوش مطرح نیست یونکت کلو اصلا موکنده شد امام برموندن این رو الان ما از قیل از کتاب دایم اسلام جایی نداریم و قبل کتاب به اصلاح جناب های بدایه اصطنایه این ما جای جایی نداریم ماده شارون که پیزه ها به شعر کله عدیت و ما الان نه در کتاب اهل سلمت این محکم داریم فقط در جهتری یاد جهتری اینطوریه این طوریه. منصوب به امیل المومنین اما زمان علم ما سال 310 زمان علم ما 310 و 15 تیرهاب شعر کله این تاریخ چهار تا حوض دیگه خیلی مورد نتیز نتیزگیری سم بخشی بازند نه مخصصر یا برگردیم به خبن حلق الهیه انشاء الله.